خب بسم الله الرحمن الرحیم ما در در خاطر مبارک طول مونده باشد ویروس خوندیم چه زمانی همزه فتحه دارد در ان و ان و چه زمانی کسره این بر اساس قاعده هست چون اللحاظ معنایی هیچ فرقی با هم دیگر یعنی به عین ہی هستم فقط بعضی جاها ما این همزه رو فتح میدیم و بعضی جاهای دیگه کسره حالا چه زمانی ما این همزه رو فتح میدیم و چه زمانی کسره ما دیروز خاندیم اگر ممکن باشد اگر ممکن باشد این انه به اضافه اسم و خبرش به اضافه چی؟ بتونیم اینا رو در تعویل مصدر قرار بدیم اون موقع فتح میگیره چی میگیره؟ که دیروز خوندیم ولی اگر نتونیم این این حمزه رو این ان رو با اسم و خبرش در تعویل مصدر قرار بدیم اون موقع بهش کسر میدیم خب چه زمانی ما نمیتونیم اینا رو در تعویل مصدر قرار بدیم این یک سوال اساسی هست که در درس امروز این پرسش رو پاسخ میدهد به اصل دقت بفرمایید مواضع و کسری حمزتی ان جاهای کسر داشتن حمزه اینه این خیلی تو این کتاب جالب ساده توضیح داده سه گروه از امثله رو ذکر کرده است الامثله این نیلا حیات مصره اول ترکیبش میکنیم گرچه امروز ما بحث من ترکیب نیست بحث من روی این هست که چه زمانی ما این نه بگیم چه زمانی؟ انه این نه بگیم از حروف مشبهه هست انیلا اسمش منصوب با فتح حیاتو خبرش مرفو با زمه از نوع مفرده از نوع چه هست؟ مصره هم مضافن اله ولی چون غیر منصرفه غیر منصرفه هرگاه مجرور بشه مضافن اله جز مجرورات مضافن اله همیشه مجروره ولی چون این غیر منصرف هست غیر منصرفا کسره نمی پسیرند خاطر این فتحه گرفته مجرور هست با فتحه حالا این الكذبه جبنون ترکیبش خیلی ساده هست این العدله اساس و بازم باز هم خیلی ساده هست مثل اولی هست در این سه مثال میبینین که ان کسره داره علتش جه هست؟ علتش اینه که در ابتدای جمله اومده علتش اینه که در ابتدا قبلش کلمه شما بینید ولی در اون امثال قبلی اگر بریم بررسی کنیم در درس قبلی یه سر رونی انکه مطیعون ابتدا نیومده بود ابتدا نیومده بود پس نه موقعی که در ابتدای جمله بیاد ما توانیم اونو به تعویل مصدر در بیار حالا امثله گروه بعدی رو قسم بعدی رو دقت بفرمایید یعنی چهار و پنج و شش را قال المتهمو انی بری اون قال المتهمو انی بری اون قال فعل ماضی المتهمو فائلش مرفو بازمه انی اینکه حرف مشبهه یا اسمش هست محلن منصوب چون مبنی هست برای اون خبرش مرفوب بازمه. اینا هم مقول قاله هستن خب فعلا اینا رو مطرح نمی کنیم وی آن چی که برای ما در این درس مهمه چرا اینجا انی کسر دارد و فتح ندارد چرا انی نیست چرا انی هست آ؟ این که دومین جایی که ان در تعویل مصدر قرار نمی بگیره با دو معمولش زمان یک بعد از قول بیاید بعد از چی قول یا کلمیک که از قول مشتق شده قاله یقولو قول فرقی نمیکنه متوجه شدید پس در این سه مثال اگر شما هر سه مثال دقت بفرمایید ما کلمه‌ای رو داریم که از قول گرفته شده باشه در مثال شارون قال المتهم و بریون در مثال فنجم قول ان الحق واضحون در مثال ششون لا تقول ان العمل شاق، در هر سه مثال ما میبینیم که چی مومده است؟ کلمه از ماده قول هست از ریشه قول است. پس هرگاه این انا بعد از قول یا کلمه که مشتق از قول هست بیاید اون موقع همزه کسره میگرد چی میگرد؟ کسره میگرد و اما السمثال دیگر زرت الذي اني امجده اشفقت على التي انها جديره بالشفقتي حضر الذين ان حضورهم يسرني اگر در این سمثال دقت بکنید ما قبلا خونده بودیم اسمهای موصول رو الذي اللتانی، اینا اسم های موصولی که خوندیم جمله ای که بعد،, بعد از این میاد به اون جمله میگن سله به جمله ای که بعد از اسم موصول بیاد بهش میگن چی؟ سله حالا اگر این انا در ابتدای سله آمده باشه اون موقع باید کسره بشه بیدیم زور تو الَّذی اینی امجیده اینجا ان بعد از چی اومده؟ بعد از الَّذی مثال بعدی اشفقت ال التي انها بعد از التي حضر الذين ان حضورهم يسرني ان بعد الذين اومده پس در این سه مکان در این سه جا حمزه انه باید کسره بگیره حالا در قواعد توضیح میده بیاید قاعده 112ه کتاب توکسرو حمزه الا اذا لم يمكن ان تو اوله و معمولها به مصدر کسره داده دا میشه حمزه اینه زمانی که ممکن نباشد نه و دو معمولش یعنی اسم و خبرش به تعویل مصدر در بیان و یجب ذالکه فی نحو ما یاتی و واجب از حمزه در امثال زیف در جاهای زیف اذا وقعت فی اول الكلام البته جاهای دیگه داره ولی این کتاب برای ابتدائی ها چی شده ترراهی شده إذا وقعت في أول الكلام زماني در دار أول الكلام واقع بشي ب يا با إذا وقعت بعد القول ومشتق منه زماني كي إنا بعد الغول يا بعد الغلمي أز قول مشتق شده باشد واقع شده باشي جين إذا وقعت في أول جملة الصلة زماني در دار جمله سله واقع باشه در این جاها حمزه کسره میگیره حمزه چی میگیره؟ خوب درس بعدی تقسیم الفعلی الى صحیح و معتل تقسیم تقسیم نا این ان چجاهای مخففه از انا ما انای دیگه هم داریم بسه انتا ظنبه که روی فعل مزاره میاد ولی این ان با اون فرق میکنه این خودش یک بحث خیلی مفصلیه که چه حالاتی داره شما فقط اینو متوجه بشید در حال حاضر که چه زمانی فاته میگیره و چه زمانی کسره چه زمانی ان رو به کار ببریم و چه زمانی ان رو در عمل و در معنا هیچ فرقی با هم دیگه ندارن فقط فرق روی حرکته فقط فرق روی چیه اون خودش بحث مستقلیه که ما در کتابای مثل قطر الندى و کتابای نحو الواضحه بعدی خواهیم خواند که چه زمانی این ان نه مخفف میشه یعنی مثلا ما به جای ان این نه ان میگیم به جای ان نه ان میگیم تجدیدش نمیدیم در این دو درس نه در این دو درس چیزی رو که شما باید بیاموزید این هست که چه زمان ما ان نه بگیم و چه زمانی ان نه حالا شما فهمیدید که ما چه زمانی اینه رو بکار ببریم و چه زمانی اینه رو؟ اینو فهمیدید؟ خب خلاص اونو در کتاب های بزرگتر یعنی بعد از ابتدایی توضیح میده که تازه اگر مخفف شد آیا عملی انجام میده یا انجام؟ نمیده احکامات دیگه ای داره مخصوص به اون هستند احکامات خاص خودشو داره که زمانی که اینه یا اینه مخفف شد. این نه یا انه شدن؟ بله تقسیم الفعلی الى صحیح و معتل تقسیم فعل به صحیح و معتل ببینید فعل یا صحیح هست یا معتل ما قبلا اینو اشاراتی در مورد خوندیم فعل معتل به فعلی گفته میشه که یکی از حرفهای اصلیش حرف الله باشه حرفای الله هم سه تا هستن واب و یاو الیف واب و یاو الیف اگر فعلی یکی از حرف اصلیش واب یا الیف یا یا بود بهش میگن موتل اگر نبود بهش میگن صحیح خود صحیح انوایی داره و خود موتل هم انوایی دارد خود صحیح انوایی دارد و خود داره. در امسل من این نکاتو متوجه شما خواهم کرد چرا در این درس 24 مثال آورده در این مثال در این درس 24 مثال آورده به خاطر اینکه انواع فعلای صحیح و معتل اینجا مثال آورده در امثله دقت بفرمایید شرب الولد اللبنا نوشید پسر شیر را خب شریبه صحیح یا معتل صحیح چرا چون حرف عله در آن وجود ولی خود صحیح بر سه نوعه خود صحیح سالم محموز مزاعف، سالم مهموز مزاعف، مهموز اون یکی که درش حمزه باشه مضعف اون یکی یک حرف هم دو تا حرف هم داشته باشه دو تا دال داشته باشه دو تا را داشته باشه دو تا شین داشته باشه بهش میگن مزاعف. حالا شریبه آیه مهموز یا مزاعف هست یا نیست پس صالمه پس چیه؟ کسر علیون الغصنا عرفه اطبیب و ادعه شکست علی شاخرا شناخت دکتر مریزی را دا یعنی مریزی دوا یعنی شفا حالا این شریبه و کسر و عرفه سالم هستن صحیح هستن از کدوم نوش؟ سالم. ترا کن نهم زدر اینها وجود داره و دوتا حرف هم به سه سال بعدی دقت بفرمایید امر الظابط تو الجندي سال التلميذ المعلم قرع القاضی الحكمه. دفصور داد در جدار سرباز را پرسید شاگر معلم را خان قاضی حکم را خب سأمره سأ سأل قرعه اینا محموس هستد چون یکی از حرفای اصلیشون چه حمزه هست بعدش در این سه مثال یک شگرد ای که نویسنده کرده این هست در مثال اول حمزه رو ابتدا قرار داده در مثال بعدی در وسط و در مثال آخر در لام یا در آخر تا به ب... ما بفهماند که حمزه میتونه هر کجای کلمه قرار بگیره به اولی مره میگن محموز الفا به سعلم میگن محموز العین به قرع محموز اللام یعنی در عمره فاicipال ما فاicipال از کجا تشخیف میدهیم زیر فای این اونی که زیر فای بش میگن فل، اونی که زیر این قرار بش میگن این این فیل اونی که زیر لامول فیل بش میگن لامل شما عمره رو زیر فای این فایلوی نویسید همزه زیر کدوم یکیه فای پس در عمره فای الفیل ما حرف اللخ هست در سعاله این الفیلمون و در قراءه لامول فلمون. حالا بیایید سه سال بعدی، آد در رای قنمه چوپان چوبان چوب گوسفندانش فر فرار سعی فرار کرد زندانی شد الولد و محکم بس پسر ریسمان را تناب را آد شد این سه تا مزاعه هستند چون دو دوتا دال داره فرار دوتا را و شدت دوتا این مثالی مثال تا اینجا کار دیم همهشون صحیح بودن. صحیح سالم محموز و مضاف. حالا بیایید روی مثال های از اینجا به بعد و رو وجد حسن و کتابه ووهلی بی ساعتا. پرید پلک یافت حسن کتابش رو بخشید مرا پدرم ساعت. و وجد وبه اینا درشون حرف الله وجود داره واب هست حرف الله فاول فعلی این سه فعل حرف الله است. هرگاه فاول فعلی فعلی فعل حرف الله باش بهش میگن موتل الفا یا همون مثال موتل الفا یا مثال در سم سال بعدی دقت بفرمایید نال المظلوم محقق حقه مال الجدار و نام الصبی مظلوم حقش رو گیر آورد دیوار کت شد خابيد في سرب نالا مالا ناما هارفة اللي شون شلحس ألفة ولي در ابتدائي يا وسط يا آخر فأيلو الفيلة بس بإلم موتلو الأين يا أجوف موتلو الأين يا أجوف. أجوف سنة صالة بعد رد قد فرموهيد رمى اللائبو الكرة خشي الناس كربهو سروا المهذبو اگر دارين مثال دقت بفرمایید در رما خشیه و سروه ما ستا حرفه چند تا حرفه الله داریم در رما علفه در خشیه یا هست و در سروه چه هست واب هست پس این هر حرف فیلت در آخرند در لام الفیلند به اینا میگن موتلللام یا ناقص موتلللام یا ناقص سروه هم به معنی بخشندگی به معنی خشی هم ترسید رما هم پرتاب کردن وعد المجد دو درسه وآ المجد دو درسه یعنی نگهش داشت حفظش کرد وفى الصديق وقى الغلاف الكتابه وقى هم به محافظت کردن حالا وا وفا وقا ما مثالو خوندیم عجوفو خوندیم ناقصو خوندیم وا دیگه چی هست وا دو تا حرف عله داره چند تا داره اونی که دو تا حرف الله داشته باشه بهش میگن لفیف اگر این دو تا حرف الله از هم فاصله داشته باشن بهش میگن لفیف مفروق مثل وا وفا وقا كيف فاصلات بين الدوتا حرف اللي؟ و اگر فاصلنا باش بش مجان لفيف مقرون كسي مثال بعدي در برايه لفيف مقرونان طوال كاتبو الرسالة عوى الذبو لوى الحدادو الحديدة درين سي مثال طواء عوى واللواء دوتا حرف اللي چسبیده به هم حسن دوتا حرف اللي چسبیده به چه حسن؟ بله حالا تمام امثلی که تا اینجای کار آورده بود تمام امثلی که تا اینجای کار آورده بود بیس و چار تا مثال سه تا برای ما چند تا نو داریم مثال اجواف ناقص لفیف مفروق و لفیف تنج. پنج پنج تا میشه 15 تا خب سالم و رو هم حساب کنید سالم مح무ز مضاعف مثال اجوف ناقص لفیف مفروق لفیف مقروون میشن 8 تا 8 تا میشه چند تا 24 تا به خاطر این 24 تا رو به شکل جداگانه آورده بود پس در این قسمت کار در شناخت اینها آیا شما مشکلی دارید؟ خو؟ نه نه حمزه حرف الله نیست فقط حرف الله و و علیف و همزه حرف اگر همزه حرف عله می بود به امر دیگه اون موقع میگفتیم معتل بهش گفتیم چی ولی صحیحه جو های. بیاید روی قواعد قاعده 116 کتاب الفعل الصحيح هو ما كان كل حرف من حروفه الاصليه صحيحا وهو انواع ثلاثه فعل صحیح آن است که هر حرفی از اس حروف اصلیش صحیح باشه و و صحیح بر سنو است الصالم ما ماکان خال من الحمزی و تظیف سالم اون یک حمزه نداشته باشه و تضیف نداشته باشه. محم ماکان أحد حروف الاصلی هممز تون محمز اون یکی یکی از حرف های اصلیش حمزه باشه به بهیر خاطر به عکرمه نمیگیم محموزه اکرمه حمز حرف اصلی نیست مزیده چیه؟ مضاعف والمضاعف ما كان حرفه الثاني والثالث من جنس واحد مضاعف در ثلاثي مجرد اولى اسكي حرف دوم دو وسفومش از یک جنس باشه الفعل الموطل هو ما كان بعض حروفه الأصلية من احرف الاله فعل موطل اولى اسكي بعض از حرف هاي اصليش حرف اله باشد يكي يا از حروف اصليش حرف عله اصلا حرف اصلی ایله داشته باشه بهش میگن معتل و هو انواع خمسه بر پنج نوع میوشد الف المثال ما كان حرف عله مثال هست که حرف اول یا فاعل فعلش حرف عله باشه الاجوف ما كان وسطو حرف علته اجوف هست که حرف وسط یا عین باشه الناقص ما كان اخرو حرف علته ناقص هست که آخر حرف آخری یا لام الفعلش حرف عله باشه اللفيف المفروق ما كان اوله وآخره أول اخره حرفي لفيف مفروقونه اسکی فاء الفعل ولام الفعل يا حرف اول و حرف اخر دو حرف الا باشه اللفيف المقرون لفيف مقرون ما كان وسطه وآخره اخره حرفي اللي. لفيف مقرونونه اسکی وسط و اخرش دو حرف الا باشه این بود تعريفه تعریف این درس اما درس بعدیمون ما در این درس زمایر بارز متصل رو می خونیم قبلن ما زمائر بحث زمایر رو به شکل اشارتا در, در, در جلدای قبلی این نحول واضح خوندیم ولی امروز زمیرهای بارز رو به ما بیاموزد چه زمیرهای رو؟ بارز یعنی آشکار بارز یعنی چه؟ یعنی آشکار رو دقت بفرمایید ماضی مزاره و امر رو آورده ماضی و مزاره و چی رو آورده؟ و امثل رو. امثل گروه اول ماضی ها آورده بعدش مزاره رو و بعدش امرو فهم تو درسی فهمنا دروسنا التلمیذانی فهمنا دروسهما التلامیذو فهمو دروسهما التلمیذاتو فهمنا نه. خب اینجا فهمتو تو تو زمیر بارز هست یا نیست فهمنا نه در فهم آلف در فهم واب در فهمنا نود در فهمنا نتی نود اینا زمیرای بارز هستند امسال گروه دوم رو دقت بفرمایید انتی تفهمنیه دروسک ال والدانی فهمانی دروس انتم تفهمون دروسکم البناتو یفهمن دروسهن نا در این ها مزاره رو آورده بود با زمیره بارز در تفهمینه یا در یفهمانی الف در تفهمونه واد و در یفهمنه نون اینا ها زمیره بارز هستند نون تفهمینه و یفهمانی و تفهمونه اون نون علامت اعرابه به جایز مثل زمه اون زمیر نیست حالا امثله بعدی رو دقت کنید افهمی دروسکی افهما دروسکم افهمو دروسکم افهمنا دروسکننا در افهمی یاد در افهما علف در افهمو واب در افهمنا نون اینایی که اینجا آورده بود اینها زمیرهای چی هستند؟ بارز هستند. حالا در فهمتو تو رو آورده بود. اینجا دقت بفرمایید ما ب... ب... در مازی مزاره و امر زمیرای بارزو رو بگیم. در زربا مزیر بارز نداریم. در زربا الیف. در زربو واف. در زربت نداریم. در زربتا الیف. در زرب. در زرب نون. در زربتا تا. در زرب توما توما. در زرب توم توم. در زرب تی تی. در زرب توما توما. در زرب نه. تو نه و در زرب تو تو در زرب نه نه اینایی ای که من نام بردن اینا همشون زمیر چه هستن؟ بارز هستن اینجا آورده بود مثلا در فهم تو تو بعدن این تو میگه در جاهای دیگه هم زمیر بارزه ولی به با کامل نه آورده بود نه حالا بیایید در مزاره در یزریبون نداریم ذمیر بارز در یذربانی الف در یذریبونه واو در تزریبو نداریم در تزربانی الف در یذربنه نون در تزریبو نداریم ذمیر بارز در تزربانی الف در تزریبونه واو در تزریبینه یا در تزربانی الف در تزربنه نون در ازریبود نظربو ازمیر بارز ندارید اونها ضمایر زم... مستتر درشون داریم ضمایر چی مثلا در تزریبو تو می‌زنی ضمير زمیر... انت درش مستتره در ضرر زرع... من میزنم نه مستتره در ز... نظر بو نحنو در فعل امر همچنين ازره نداریم، ازریبا در ازرب ما ضمير بارز نداریم مستتر داریم ولی بحث امروز ما زمیر بارزه زمیر چیه؟ زمیر بارز متصل به فعل در ازرب ازریبا الف ازریبو وا یا ازریبا الف ازربنه نول پس کاملشو گفتیم بیایید حالا در قائده قائده صد و پانزه کتاب زمائر رفع البارزتو التي تتصلو بالماغلی هیا زمائر مرفو چرا اینا رو بگن مرفو؟ چون اینا نخش مرفوی دارن یا فائلن یا نائب فائل اگر فعل معلوم باشه زربتا بهش مگیم فائل اگر مجهول باشه زربتا نائب فائل ولی مرفوی ولی چی این زمیر ها مفعول, مفعول منصوب نمیتونند واقع بشند پس زمائر مرفوعی بارزی که متصل میشن به ماضی عبارتند از تا و نا الف و اسمین و و جماع و پس زمیر تا و نا الف و جمع و نون و تا مانند زرب تا مانند زرب نا الف مانند زرابا، توما، الف مانند زرابا، واف مانند زرابون، نول مانند زرابنه. صد و شانزده زمایر رف البارزه‌تی تا تصل بال منداری و امری هی. زمیر های مرفوی بارزی که به مزار و امر متصل میشن. چون امر از مزار درست میشه. زمیرایی اینا ترکند. امر چی درست میشه؟ از مزاری. یا مخاطب مانند تجربین و ازربی. الف اصلین مانند تزریبانی و ازریبا و جماعت مانند تزریبونه و ازریبو نون نسوه مانند ازریبنه و تزریبنه متوجه شدید؟ همون زمیرهایی که به شکل کامل ما برای شما نام بردیم حالا یه چیز دیگه ای رو که در درس بعدی آورده است درس بعدی رو بخونیم الان یا نا بزرگواران خب میخونیم اسناد و الافعال الصحیحة والمعتلتی چون شما کتاب های بزرگتر ازین و دیگه قبلا خوندید دیگه ما فقط جهت مرور براتون میکنیم تا مقدمی باشه برای کتاب بعد انشاءالله اثناد و الافعال الصحیحة والمعتلتی الى زمائر البارس مسند کردن فعل صحیح و معتل به زمیر بارس موتل کردن فعل صحیح و موتل به زمیر چی؟ مثل زربتا اینجا ما ضربه رو موسند کردیم به چی؟ به ت به زمیر بارس اسناد و صالمی و المهموز والمثال المثال الى الزمایر کردن سالم مهموز و مثال به زمیره بخاطرین در این درس سه قسم از امسله رو آورده سمعت النداء سمعنا النداء التفلاني سمعا النداء الاطفال سمعو النداء البنات سمعنا النداء اینجا این این پنج مثال این قسم از مثالا اسناد سالم بود به ضمیر سمعتو سمعنا سمعا سمعو سمعنا اینا مسند بودن که به ضمیر ضمیر رو میگن مسند الیه چون فاعل فاعل میشه مسند الیه فعل مسند میشه به سمت فائل سمعت سمعنا سمعا سمعو به تا هست در سمعنا به نا سمعا علف سمعو بواف سمعنا اینجا هیچ تغییری رخ نمیده هیچ تغییری درشون رخ نمیده زمانی که ببینید ما امروز دو درس و اینجا آورده اینجا شماره یک رو زده اصناد و سالم و المحموز و المثال در این درس ما اسناد سالم و محموز و مثال به زمیرها رو میخونیم در درس بعدی اسناد مازی ناقص و به زمیر مرفوع بارز میخونیم و در مثال بعدی مزاره و رو به زمیرها خب اینو من زبطشو شد جداگونه بزنم که چون اینا همیشه مرتبط به هم